از شوال الله بارگاه پربرکت مولانا و رحمت الله الرحمن الرحیم که بر محصد اول مطلع شده بر مشایخ و استادان راجب رو به جیه به کردن شیخ این که وجود متابعه تر و عمل همه لحظه موجودن در مبوب نفسی تریبا محل الواقع از مضمونش مزموشت در حقیقت در کلام خودشون دو تا محقب رو آوردن که بردها منشه تخصیب و شده یکی لجوم همه در حواقه وجود مطابقه در یکی هم لحنه بود به در واقعه قریبیت نفسانی نفسیه در نفس اینجا هم ذاتن خود قرد به ذاته به نفسه طریقونه در واقع بعد که ممکن نیست جرد و برای این چون چون به اصطلاح برش حاصل نفعش هم ممکن نیست چون همون تناقض داره میاد این خلاصه یه و بعد مثال که در خود اینجا چند سفته مختصری و ققیه شم و عنوان تنگیه دارد عطو که میگه من یعنی نه تو عبادیه باشه شونزه نگفته تعبیر شیخ همین مقدار تعبیر ذاتی یا عقلی که قوت ذاتی یا از آزم ذات یا ذات اعلی کلیه را بیانش یا از آزم عقلی حکنت این نه اور تعبیر ذاتی در این هوا باشه مثلا میگه میشه قادر اما تعبیر ذاتی نه آمده بعضی ها راجع به این مطلب هم راجع به شرق عبارت شیف و هم راجع به اینی که آیا ذاتیست یا جاتی نیست صحفتهایی شده ما پس کردیم که بهتر از در این مسئله ایچه هم یه مقدار متعرض به کلمات تا آیانی که قرار بشه توضیحی جاذبه شه و هم ببینیم خود مطلبی نصده چیه حالاته که میخواد مراد شیخ همین باشه یا مراد شیخ نباشی. این مساله روی که از بکنید باید به سیاه و تمام افغال اینها نمیگشی. یک مقداری که نسبتا واضح تره سلماتی که در اینجا هست مردم آیم بروجردی جرگی الله در نهایت دیگه اون تقریب نگاه نگام نکردن اما با هم متابرن در این جدی که بعدها شده در صفحه چارسر یکی، چیه یه خدو همین صفحه چارسر عنوان زدن معنا ها بود جیخ همین بحثی رو که من همون مفرکم هم. مردم های بروچیدی مثل ارزش کار معنی ها این مسئله بیشتر به خاطر نستیشون شاگید حساب کفایی هستن که شاگید شیخشون مثلا نقطه کلمات استادشون ایشون می‌فرمایند که عبارت شیخ دو معنا ها احتمال داده ان یکون مرادهو به مطابقت مطابعت قرد خوال وجوب شرعی و یکون متعلقهو العمل الذي مثلا ون مطابعت قرد و توح ملوهی علیه بالحمد شاید به تنجیده جون که سلام از محطوع وجوب احتمال اول دادن که ما در وجوب در اینجا وجوب شرعی باشه و این وجوب هم تعلق به داخته به خود عمل یعنی وجوب عمل جایی احتمال عرض که دنیوز که مراد وجود عمل باشه لکه وجود و عمل فوق مشهد نه اینکه نفس مطابق اب ماهی مطابق نه خود مطابق آنوا مطابق نیست نه مراد عمل وقته و لذا اینجور این میکنه که یاسیل بنا این واداش هرکس میکنه که بخواد یه حاصل معنا انل قاطع به وجوب صلاه، کسی دیگه قطع به وجوب صلاح لا اشکال اندهو فی وجوب صلاح کسی دیگه قاطع اشکال نیست علتی اکونو به وجود حافل خارج مفهوم مثل مفهوم متابعت وقت بشون مفهوم همون متابعت وقت ده همون وجوب صلاح و بحنای عدم اشکال ثبوت و قرد. چرا اشکال نداره یک جای چون قرد داره ل رضایی ایشان اینجور ترمید فیر جعوی کلام قاسمان به وجوب صلاحات ترمید فرمدن عبادی شیف رو کسی که قطعه وجوب صلاحات داره در قطعش وجوب اشکال نداره از مخلا واضح ای نداره بعد خودیشون وحاید احتمال و این نفسی و خیلی هم واضح از مجموع کلام مرادیریشان همین داه. پس بنابراین محنای حوجیت ق این تصوری که ممال بود جایوردن عبارت هست وجودوب عمل نه مطت تحت مطابقت نیست عمل ندار مطابق است. احتمال دوم که مرع وجود وجود ی باشه و متعلق این وجودوب مطابقت یا قصد به ماه یا است. نه عنوان عمل مطابق دنبال رفتن پر ولی مراد من عدم اشتال عدم ثبوت اشتال انده جمیع قغالا نه چون در صورت اشتال نه مراد اینه قغالا اشتال میشه قغالا اینه هست فه این نام کمون به همین القاطع یکی با يجب علیه و قفعه ولایه اون من حضورم که مخالفته پس یکون و قرد هجه تنین دوام هجیت قرد در اینجا لزوم عمل نیست به معنات که اونی هی سببا یه تنجز الواقع پس مراد از هجه تنین منجز اکنیر القف و هجه تنین منجز کن پس گایی اوقات مراد ما از قرد از حجیت در واقع قرد لزوم عمله گایی اوقات ممکن است مراد ما از هجیت تنجز باشه از دیرون به حکم اپسدانش حجوب احلی که رفتن بعد هم حکم اقلاقی رفتن نمیدون ما داریی چی رو جمع فرمیدن بنا بعد میشون میفرمایم وقت حرف سهند مراد الاسوری به وجه داله مراد الاسوری سبب تنجزه لا ما یج علا حق نل که حضب و حضب قرار دازه که اصطلاح هم بشین یعنی اصطلاح منطقی کل ما طلب وعل و جس رووان عملوه و عاققطت و عاق ساال امارا لای میگوونش به لا ما الام مذکر اونشه سروت جز وااپ ت شد. بعدی شما تقز این ملبشون شرل بر از این مطلب بحث و پر جول و نه ح وقطت مطرح کردن و اون بهقطع سشه به اما را روسه ن هنوز وارد بحث نشدیم اون اد شرختون سرعیع کرده. راخته آورده. خود برد. در مورد رفتار ایشون در اصولی اینه بعد ایشون متواتر و عام تا که بود در وجود وجود متواعد وجود به عمل داشت. بعد خود ایشان این مطلب رو توضیح دادن یعنی خود مردم الهی وجودی توضیحش رو باید بکنم ولی بعد از یک چندتر شور اندازم هم نظاهر بارد شیفت ما ایشون به نظر ما مرادش هم وجود شرگی و مراد این حجیت قرد عمل به طبق قرد لا اشکال اندل خاطع به صلاح مثلا اینکه که ایشون میگه لا یعنی کسی که قرد که پیش نیست که قرد داره که که قرد داره, داره مثلا که وجود صلاح داره لا اشتال یعنی این نه که وجود مسابقه و تنجز نه و معنا عدم اشکار تما حرف سبوت رو قد علا قد محصل فسار محسن المعنى محسن المعنى انال قاتل به وجود صلاح قاتلان به وجود صلاح تفتیر عبارت شیخ رو پس این اول عبارت شیخ و اینجور معنی برمده من رو ما از مروشی از استادشون صاحب شفایی گرفتن یا به ذهن او باره که خودش می رسید اما دلیل ایشان لهم نبود به نفسی طریقون الى الواقع ولی صد طریقیت و قابلتن به جهل چون خودش به نفس طریقه و زا قاطع دوریوب سلاف قاطع دوریوب سلاف به طریقش بعد ایشون اشحال گردن به شیخ باید رو به علا داره که اندلیل این مدعا این مثل به اصطلاق گوه من گوشنم و شما من گوشنم این این هم دیگه شد اصلا آلم متغیره چون آلم متغیره و قول به اصطلاق به اصطلاق مصادره مطلوب شد. دلیل شما این مدعا است. چرا؟ این طریقیه این که میگه به نفسی طریقان لیفت از الا کشفر واقع و هو این رو لاره یکی حجوب را از درنه و به نفسی این درنه و قفه اینطوری گفت لذا اشکال اشکال علیه همراه رهدت الموضوع و فی که المدعا رهدت المدعا و دریگ که این مسادره محضور بعد ایشون فضایی که استاد ما در کفایه تحویل بیخواه بردن که این اشکال درش وارد نیمیاد حالا بیمونست در حواد کفایه ناست اینجا بخونیم پیش اندرل خوب هر عمل بس ایشان به اجماع رساله بویه می‌گاری استادش و عمل علاوه بر قصد بلکه اعلن هر شده عقلا که از آی اس انگ است متابعت اما نظر به عمل نه امان رنای شبهه فی وجوب لزوم و حرکت علاقم به جزماً. طبیعی لزوم و حرکت امر عمل. رنای شبهه فی كون این موجبند تنجز تکلیف کعیلی. این همان سبب وجز تنفی تن به اصلاح اصولی. موجبند تنجز رو اگر ما این ابرا بازای موجودو می احتمال داره که این تفسیر و شعر رویشون در درسه درسه صاحب کفایی دیدن کمی اختلاف دارم باید بنده بندتنه دوز تکریف الفعلی سابقا من یک توضیح از ترم در اصطلاح صاحب فعلی در مقابل عوامر سوری و امتحانیه هر جا سین شابده و زرج باشه بشینگه فعلی به دایی بحث و زرج باشه بشینگه این شایینه اسطلاح کفایت بس مرادت فعلی این اون کنید دیگه واقعی و جرج بازه بل این که بحث زرج دوش باشه جرج بینو موجبن به تندز تکلیق فعلی فیما ازها به سهقاق الزن و عقاق مخالفته، و قضره فی ما اخته خسوره الا و لا یخفا انداره که لا یخونه به جهد جائب این حجیه لعدن جهد تعلیف جهد مگر تصور میشه تصور نمیشه بین شیع و لوازه حالا اینشالله عرض کنید، مرموم اصلا این, مرمو این مبنا رو میپسند پس طور این تعبیر، این به اصطلاحوجیت که منع عمل باشه عقلن و حرکت باشه این جزء لوازم قطعه هم. موشن جد کنیم ساله یه تعدیر بود ذاتیه بود ممنون که جزء لوازم این اصطلاح لوازم هست این جزه هرز می کنم برسوزی بیشتر توی شبه برای که بستم بله و یه مقدار ایشان ازاد وقت اشتاراتشون به ساکت بوده استادشون ساکت بوده شدن که آن مراجبه خیلی نمید اون خودی ها آن دره الان از بکنید مقدارش در محل خودش این مختصری بود راجع به یک تفسیر از عبارت شکل مرموم میزای نایی قدسه الله و نفسه که واقعا از ارلا میمیخندن در در حالت این چاپ جدید جلد سه قدیم جلد سه دیگه در جلد از این چاپ قدیم از این شاپ که جامدرسین انجام دادن صفحه شش شویست ایشون همون مطالب شیخ رو به نمو اجمال وزن کی وجوب متابعت القط بعد فرمودن و المراد من وجوب متابعت القط متابعت وجوب و متابعت المقتول خیلی ظرافت است که مرمون نایمه به کار برده یه مراد از وجود و متابعته ام این نیست که بیاد اون سخت شما رو نگاه کنه. بلکه این وجود وجود به متابعته اون مخشوفه مثلا شما یه قرد دارین صدر دادن امروز برای شما واجبه یعنی دارین صدر دادن واجبه برای شما مطابعتمون صفت نفسانی که قطعه واضحی چون شما باقتیتون داریم وجوب صدقه رو میبینیم این وجوب مطابقت به خاطر انکشاف خود وجوب صدقه و المراد من وجوب مطابعت القط وجوب مطابقت المختوب من الواقع المرگی به قطعه اون واقع و لزوم العمل به ما عدده علیه قطعه و الجعب علاوش علمه ترون و حال الوجوب بیسه وجوب شرقیت لن طریقیت القرد ذاتیتون در ایشون به جای تدیر شفت که به نفسی طریق و طریقیت در لا تنال و آید و لا اثباتن و لا نفیه میبودم محتفظ زرافت نکته ای که مدهوم ناینی در اینجا ما خواهد در عبارت شیخ بگرم یعنی محتفظ چیم روکسن شد گرم در حقیق از وقتی شیخ میترم لا تشکالفی وجود و مطابعت القهر ولحمل علی مادام موجودن لنبوب نفسی طریقانه للواقع نرمونه هایی مخوند بفرموند شیخ تا الله گفته نظر ایشان این در وجوب عمل نظرش همون طریقیت ذاتی قطعه یعنی نقطه این که قطعا دیگه که بالعمل رو بالقبل و وجوب مطابعه نقطه اونه نقطه, نقطه تریقیت ذاتی قطعه به ایشان یا تغییر شیخ به نفسیهی تبدیل یعنی مخاط مرمومنایی در شرح الهیار شیخ بفرمان دید که مرحوم شیخ انصاری با یک ذرافت و لطافتی سر نزومه عمل به رو بیان کرده. موجب و به سرش اینه سر مطابعت است. سرشینه سر مطابق. چون غرض به نفس طریقت به واقع خودش احتیاج به هیچ جعلی نداره، احتیاجی به حالت انتظاری نداره. قرط پیدا شد اون واقع برای شما منتشر میشه اون واقع برای شما مرگی میشه وقتی برای شما مرگی شد این در حقیقت اون واقع که شما رو به عمل وادار میکنه وقتی شما قرط پیدا کردید که صدق دادن امروز برای شما واجبه یکی قرط بکنیم شما قرط بذارید که صدقه دادن واجبه این قطع نیست که لزوم عمل میاره این صفت نفسانی شما نیست این به نفسانی شما نیست این ظرافت روشنه کنیم چون شما الان وجوب صدره رو میبینیم بدیهیه براتون روشنه چه صدره با جوره اون وجوب اون وجوبی که واضح شد اون اختضام میکنه که شما صدره بدهیم لزوم حمل برغض سرش این طریقیت قدره کاشفیت قدره حالا ایشون تغییر به طریقیت کرده بعضی ها تغییر به کاشفیت کردن ممکن است مثلا اینکه که در این فرق آید باشه حالا من خیلی هم این بحث میشم یا شوش در مساله با آهنده روشن میشه پس مرحوم نایمیه از اون راهی که آزوزی راستن از حجور عقلی شهری ایشون در شرق عبارت از اون راه نرفتن عبارت شیخ رو یک نقطه ضریفی توضیح بودن و اون لعنه بود به نقصه تریغن رو به یه مثال متادر و متادره به و این و و دلیل عین و حسین چیز حالا یک من الان توضیحی میدم که یک توضیح نایی که بایدی که روز بعد من خودم عرض بودن بگن برای هاشنایی شما شما اینجا نقطه ای رو در نظر بگیرید. شد و خلال بحثا این باید روشن بشین شما وقتی هر فیرا میکنیم بیگنیم تکلیفی در حد تکلیف پدر در حد تکلیف برادر مادرتون از تکلیف خواسته خواست از اون به قوانی قف دارین که پدرتون این رو از اون خواسته مادرتون از اون خواسته قف دارین قف به فارشنا این مطلب بحث مثلا خواسته پنج تنون این این قف این که شما این پیشنهاندی به دفع عمل میاد نه همان بر به اون میاد یه کار مهم در اینجا این است این که شما یک تحلیل بدید که این لزوم عمل به تعبیر آیان حالا یا لزوم یا غیر لزوم این چه رابطه ای با اون حالت شما داره مثلا یه شما وقتی قرد پیدا می یک صفت خاصی داریم در حال زن من در حال زن من داریم الان واضحه براتون مثلا روز بگیم اما راجی به که مثلا الان آیا توی مثلا نقطه مثلا آمریکا روز یا شده میگه اونجا شب حالت قرد یکی حالت خاص نفسانی در مقابل زن نوشک و اینا این طور دیگه دو شما بر اثر این حالتتون یک رابطه با اون واقع پیدا می یعنی اون نام به خبر رو با شکل رابطه روی و ادراکی پیدا می کنه اونم توی شما وجود داره. اینم دو سوم سه پا این از که این رابطه اگر بنابشه که مثلا یعنی اغلا یعنی حساب رو بکنم با مثال بخون اگر با این رابطه که این وضوحه اغلا بگن بگن ما تاثیر اصد ندیم این کافی نیست تو قطر باید بلند بشیده در خونه زنگی دانی از مادر سوال بکنی از دولت رو بپرسیمون بگی نان بخش کن بخش کن و خلید و املا اگر قطر بخش هست تو سا برادر گفت کن سا نفر دیگه گفت کن قطر بگردی چند نفر بگفت کن مادر گفت اون روز نمی کرد اون هست که اگر که قطر بگردن این حالت هم هست که اگر قطر اوضاع قطر بگید یعنی انسان باید یکی برو باید شهریه بکنه مباشر درمون چند بکنم سآل بکنه مجاز نباشه کنایه نباشه چون احتمال دیگر هم هست تا این سرس شدار بکنه به وجوب نانخریده پس نه یعنی اون وجوب نانخریده دیگر از حاصل قطعه هم رد باشی این چند سرسو احتمال داره رو این نقطه باشه. سوالی که اینجا مستقه این عمل شما به خاطر کدو نگیه شما یه تصور میگه عمل شما به خاطر همون ادراک صورت طبیعت این صورت این طور یه گذره میگه نه ادراط خیلی مهمی صورت مهم نیست اونی که مهمه شما واقعی دارید ببینید که مادر خاص به خواست مادر من جناب رو هم این رو میگیدیم ادراطی گفتن نه چیزهای سانوی مثلا همون تصحیل که از بشارم زندگی رو به هم میزنم اونی که الان مهمه به بکنید شما باید به ارتکاردات و خلوطین بریدید ببینید این رابطه از کجا پیدا شده چون این صفت نفسانیه شما که اسمش شکعه از خطایسه این صفت نفسانیه شما ذات و ارتباط به واقع به خارج هم است. این اسمش طریقی هست. مثلا شما بایی درست می این ارتباط با خارج لرژ خوب سونه درد این ارتباط با خارج نداره اما بایی وقت ترسل یک چیزی رو از اون می این یک درجه ارتباط با خارج داره اونی که بیشترین درجه ارتباط با خارج داره بده. چون در بقیه ی ای یک مقدار سفات نفسانی ذاتی هم هست ارتباط هم هست دو چیز با هم در خوب یکی از مناشئ اختلاف فقها در این موارد هم همینه این ذراعات ها با ترس بشه مثلا خوف الا نفس من رمن میگن که چشمش به صدا در دیگه چشید در مطالع چشید این کلمه خوف تو ما در فارسی می می هم میترسید هم یک صفت نفسانی برای انسان هست. چون انسان وقتی از یک چیز ترسی یه حالتی در اعصاب اعضایش پیدا میشه یه حالت جمود شدن تو اعضا و پیدا میشه و در این حال ارتباط با خارج هم داره اما در سردرش ارتباط با خارج نداره رضا اینطور گفتن صفات نفسانی ما یا نفسانی صرف هم مثل آلان ما یا نفسانی هم و با خارج ارتباط دارن مثل خوف لذا در این جه ها در چه؟ دو تا میشه مثلا میگن آسو سما اگر خوف داری که این مرض مزر به افتار رو کن خب بعد منشون مزر نبوده اگر خوف رو به اون حالت نفسانی خودش اون حالت ترس انسان زیغ نفس اینجوری حساب کنه هست اون حالت بود اون زیغ نفس هست حالا بخواد مرض مزمیت مزر باشده باشه اگر خوف رو به لحاظ طریقیت نگاه کنی مرض مزر نبود این صرفی که در تجهی از مسائل فوقها اختلاف دارن این مال فهم این نکاته و بعدی از استفاده نفسانی اصلا هیچ جهت عنوان موضوعی در ما ندارن اون که در ما دارن طریقیت صرف به واقعه قرد از این طریقه. یعنی طریقیت صرف و رفت به واقعه و ارتباط به واقعه مردم نایمی میخواد از این راه وارد بشن مرمون هایی میخواد از این را وارد بشن این توضیح رو گفتن که باید توضیح بیشتر شیش تجایی فرقا که اون سیزی که ما عمل می‌کنیم در کلامشه مال تریبیت برداریم و این تریبیت ذاتی چون این تریبیت ذاتی پس حجوب عمل هم ذاتی من در مقابل یک تصوری از آقای گردی گردی آقای گردی فرما نه چون این صورت که در ذهنی ها این سبب تحجیزه یعنی ایشون فرما حجت اصولی هم, هم این صورته چون شما وقتی سفت قرص ایدار کردی یعنی حالت ایدارتون ایجاد میشه یه اینو میگه سر وجود عمل و مصادره اون صورته حجیت مال اونه. پس بنابراین شما عملی در اینجا یواشا چه شدید تحلیل ها برتون روشن میشه شما وقتی قصد پیدا کردید صورتی آمد ادراکی از شی آمد آیا این صورت من چه لزوم امله؟ مثلا فرایشی که دراستی بود مال همین بود من بخوام چرا نکرینید؟ این؟ ها نایینی بیاد واقع رو میدینه میگه به خاطر واقع و این تردیلیت به واقع ذاتیه بحث خیلی دیواشوش داره جهاتی شوشن میشه کنید اون ذرافت بحث کجاست که با درش فکر بکنید چیه نقطه و نایینیشو میفرمایی سر حجیت و لزوم عمل اون طریقیت ذاتی عبارت شکل رو این دور تصدیر میکنه چون غرف طریقیت ذاتی زدار اون دو مرمان داره و در اینجای کاشه مرموم آزی داره سابقا هم عرض کرد مرموم محقق اراقی قدسال لاسره در قسمت های زیادی از همارد در اصول که تقریرات معجم النائیس هاشی زدن در هم زمان خود ایشانان طرح شد خدا رحمت الهی مناسبی رئیس شورای هوش مدری فرمودن که این مقدار مثلا شنگیه علمی شنو و فنشن ایشون بیشتر مثلا بالاتر از حد ناین نشون گفتن مناسب نیستیشون بعد عقلات ایشان کتابشای دیکشنری شده خدای از استاد اینجوری <تص> شد <مبارد> یه مقدار ایشون در قسمت حاشیه ایشون کامل نیست و قسمت‌ها گردین حواشی ایشان انصافاً به اصطلاح انزار دقیقی داره من ما آزده مثلا اصلا برداشت حالا حالا که شکنه اولفی نیست اون برداشت خیلی تقیده حرص که و بعد توازیر اصول هواشی ایشون معمول بودن که در این چاپ جامعه در این آنون در چاپ نجف که اینکتاب چاپ شده اون هواشی چاپ نشده البته به اولوها بسیار دیگه اصلا چاپ شده بسیار چاپ چ نهایت الافکار من شاگرد ایشان من آموز آشان تبدیل بود جدی که موقعا نیکیشونم مدرسی آن بزرگایی بود بعدها اون کتاب ایشانم چاپ شد مثل من نداشتم این ناظرش چاپ شد این ناظرشون بعدها هستن چاپ شد از ناصرهی که پیش نبی ایشان نبی دختریشان هست این جنابای حاسبی که معروفن در کتاب نهایت الافکار بایدی هم رو ارزی کردن که ا ندری نمی واسیت هست چون حتماً از دست مرتبه شماش از عجایب خالی که تا اونجایی که من دیدم این تو خود نادر رفتارم آمده حالا دوران انقدر ایشو یادشه هواشی استاد بزرگون چون من از ایگوردون شنیدم که حواشی مال خدای آسیاست خودشونه حاشیه بر کتاب زدند حالا یه حاله حواشی ما آسیا در که من نکتهشم من نمیگم الان میگه درایشان حسین هستن در حواشی مجموعه های آغشانتری های آمیز شما ملیت عبد الله نژاد شنید آزیار اون قرار آویارند ایشون طرحی پروژه ای حالا که این توضیح بر روشن شد حرف آزیار هم به مناسبت اینجا بخونم حالا که رسیدیم از حرف آزیار توضیح بیشتری در از تراشیزان برنامه می که این توریست که بر اون این عمل یعنی جمله آثاری که بر اثر است که ایشان عمله به خاطر اون واقعه آن نوقسدی های ما شون خیلی مغایر و نوادر ادبی نیستن گاهی میگن واقعه را من مفعول در مقابل طریق طریق و مفعول حالا گاهی اگه من تعبیر مفعول کردم خیلی دنبال صحت استعمال لغزش نباشید ایشون مجموعه واژه‌نامه‌دار خوب هسته فی ان الا اعمال المترتبه علی الفکر ببینید لیس من لوازم مرهی به وجود الواقعی ایشون از لوازم مرهی نگرسه از اون مرم از لوازم رای سفت ایشونم نگرسه این زرافت کاری میگه این به خاطر وجود این سفت مندتن در واقع لیس من لوازم المرهی به وجود الواقعی آیا نایین اینجور گرسه خوشش می‌دهد مکان سفینه آشوب. بلکه این ما من لوازم وجودی از زعیم، خودیم است لغتی که شده، ما از زعیم تصوری ادراکی. به خاطر اون سفک ادراکی، آل ملحوظی در زرد لوازمی تریگر ایل واقع. تا اینجا هستید، به لوب مثلاً این سطح بعدش یا فناست که نه آرودی که بعد آمد. خیلی این مواهز خیلی زرافت ها به کار بوده سونیه ها هم سابقه به مثل فخرازی دیگر خیلی زرافت ها و کمکاشه خود بکنه بیشتر کمکه های سوری و لبی و ظاهری و خیلی همچون بیاساس اما این کارهایی که علمان ما کردن بعد شکل انصافا خیلی زد زحمت بیاد می پس معلوم شد آ بود یک نکته بود چیه تو اصولی همون صورت ذهنیه اون سبب تنجزه آین موجب که اون واقعه چون قد بود من اون آزیان کم میکنه اون صورت به تعدیر ایشان زمین دل حاضی مرآتن دل واقعه نه خود سفت رو به نفسه نگاه میکنه و نه واقع رو به نفسه یعنی مخاطب ایشون شما در حقیقت آسیو با این اجازه دائمی انسانن در این بحث من چه واش نیستیم نیست ایشون مخاطب همون نکته فنی که من عرض کردم تو اول بحث یاسون باشه خودش هم نداره اینجوری ای نکته فنی اول در بر, بر برنگه حالا ما از اول بحث, منتجه جلو ما از ایم نقطه بحث ما لوازم ماعنیکه نکته اصلیه توی بحث ما تنجس و تنجس تو به که ما داریم در نفس صورتی که در نفس و توی مبالذ رو مخواهید این صورت رو بررسی بکنیم مهمو آزیا مخواهید بگه که این صورت تنجز می آره لکه نه به نفسه ها من که به لحاظ مراعاتیت واقع نه فقط چون واقع شما نه فقط چون صورتی شما بنده تحبیر کرد صورت اقراکی ایشان تحبیرش اینه که منلوازن وجودی هی از زعنی تحدیدیشان اینه توی همین که چاک شده همین تحدید چاک شده به جای ذهنی بنده درداشتن اون صورت الملحوظی در لحاظی هر این الواقع بلا التفات الا ذهنیت باز جهت سوریتش و ادراکیتش مندک مندک در واقع پس مرحوم ناینی می‌فرماید سر حجیت ذاتی قرد چون واقع ملحوظه چون شما این واقع رو می‌دینید منوها بوجه زیم فرمان در اصطلاح و اصولی اون صورت ادراکی سبب تنجزه نظر اون صورت هست منوها زیام و خواهیم به این هر دو جمع بکنم دست دارید اواز شمای جنبه‌های این نوبت شماست که شما بشید فکر بکنید که کده می‌بینید درسته یا هر ذرا درست نیست. تشکر بازید. اینجا کدومی که از این سه احتمال درسته؟ چون این هست که ما در فهم و خودمون یقین داره مادر این 5 سال میگه خب من میگه 5 یقین داره حالا از مادر نشه. خب این حرف تفسیر ما چیه؟ مرحوم ازیا تفسیرش روشن شد ذهینه از لا درت به اضافه مثل ها یعنی این نسبت داریم مثل این اعمال رو به خود صورت همیزه که های گروشی این رو تنجام دادن یعنی ما میتونیم بگیم این اعمال و جیت عمل و یزور و عمل مطابق. این مطابعه اعمال واقعه چون قد کاشت هست این مطابعه اعمال صورت ذهنی چون رفت که این صورت ذهنی به نفس تلحاظ نشده به لحاظ طریقه داره میگه تلا درسه این زنی را من توضیح بدم اینه زنلا برسه به اضافه مثل هایی مثل این اعمال که مطابقت مطابعته اضافه هم در اینجا مرا مرادشه بیایم دیگیم مطابعت به خاطر صورته چرا؟ چون صورت به وجود هز فانی فانیت به اصطلاح واقع لحاظ شده پس بگیم مطابق مال صورت همچه که ها رو جایی برمودن در اصول حجیت به معنی تنجز قرار و تنجزه سر و تنجزش این صورتیه اضافته مثل این اعمال الانفتل قد بلا یضافه به نظر آخر سانری درست نظر ادولی به واقع بس به نظر سانری فقط به این صورتیه